صلی اللہ و و یا رحمت سایر انتفاعات در اینجا مرحوم شیخ متعرضه دو نقصه شدن یکی راجع به و یکی هم راجع به خرید و فروش راچه به این مسئله انتفاع و خید فروش به قوایاتی تمثب شده در مانحنافی که بعضی هاش شون اهمیتی دارن یه مقدار بیشتر رو صحبت میکنیم تا بینیم آخر نتیجه نهایی چیه از قوایاتی که در این مقام هست قوایاتیست که به قاسم سیغل نسبت داده شده یا ابل قاسم سیغل و روی این روایت اصحاب ما معاصلین مؤسل، زیاد صحبت شده من مقداری امروز بحث روی این روایت مطرح نکنیم تا بعد بقیه روایات رو نکنیم مرحوم استاد بله روایاتی که از روایتی که در ما نحنفی هست که انتفاع نمیشه کرد با عنوان حرمت انتفاع این روایتی است که از قاسم سیغل از حدرت رضا سامان شده به خاطر بعضی از نکات تقریبا معظم عبارت استاد محوم آیون خوئی رو جب مثبه هل فقاهه و بعدم از مکاس محرم استاد دیگه خونده میشه برای نکاتی که داره در جلد یک صفحه 62 و به بعد منها مکاتبت تو قاسم سیغل البته به این نهوس علال امام ایشون مختصر نقل فرموده در متن کتاب در هاشیه متن رواید مفصله رواید اینطوری طوری سالا بحث های خود ما راجع به حدیث شناسی و بعد اعرض میکنم قال کتب تو در این داده قاسم و اشتباه نشه کتب تو رضا علیه السلام اینه اعمال و اغماد سیوف من جلود الهمر المیته مثلا غلاف شمشیر رو از پوست از جلو اولاغ ها که می کردن. ظاهرش این طوره که مثلا اولاغ بودن که استفاده می حیوانات رو بعدی یک فیرم شدن پوست رو اونا رو برای همین کارها بکن. فیوسیب با فوبی به سیابی فعصلیفی ها این سوال ظاهرا راجع به مسئله تهارف و نجاست و دیگه از انتفاع سوال نکرده که اصلا این عمل از بیام سوال نکرده از سوالتون نیست فقط بنا علیه السلام الی یا لی اتخر صوبن له صلاته حضرت فرمود نه نه چسته و جلوه نیت است وا که نمی‌دونم فکتب برای جعفر علیه السلام که من به پدر شما اینجور نوشتم و اینطور نوشتم و الان حالا اون تو اینطور میگه بعد میگه به الان از هم به استرا از همور وحشیه زکیه کلاههای گورخر و ز که زکی شده و تذکیه شده بعد حضرت میفرمایند در جلسه جواب یک مقدمه کل اعمال بر به صبر ان الله و الله خب پدرم گفتن که باید لباس عوض کنی این کار رو بکن چون اعمال راه جنت کو قطر تو به مکاره و بعدم حزز جهاد و فع امکان ما تعمل وحشیان زکیان طلب است وحشیه علاقه وحشی که هم گورخر به است. بعد در حاشیه نوشتم ضعیفتون لقاسم و معلب محمد بصری. پس این دواتم به سزا حالا وحش استدلال به این روایت فع امکان ما تعمل وحشیان زکیان طلب است به این مفهوم ها یدل على حرمت الانتفاع به جلود غیر ذکی فسانوش که حرامه وفیه مذاطن الازع فسنده ها ارز کردیم که خود همین قاسم قاسم سیغل مجهوله بغلایان و هم معلای برسی معلم محمد و سیغل ان مناطل عمل منعفی ها ان عمل اغماد سیوف من جلود الهمر المیتلیس الا من جهت اصابت ها از سبب الذی یصلفی یعنی اینکه این غلاف شمشیر رو از نیت درست می‌کنه مشکلش همون به لباس رسیدنه و منهنا امره رضا علیه السلام به ان یتخذ ثوبنده برای لباسی بر نماز کردن و اما اصل انتفاع بها به عمل الاغماض منها ها مسکوت است اما خود انتفاع رو ساکته یعنی این روایت ناظر به سوال از سهاره نجاسته اما اینکه این کار خودش جایز هست یا نه میشه انسان از پوست میت قلافش هر چی درست بکنه این روایت ساکده و یبقى تحت اساس الاباحه و جزء اساسه ولی ممکن ان یقال این الروایده تدل علی جواز الانتفاق. این که اصلا انتفا مینیج جایزه و که ک از سوال فیها سؤال در این روایت اینه ما واقعاً یکیش عمل الاعماد من جلود همه مردمیته و سانی اثبات و هستو فجواب او عليه السلام انسانی، امام از دومی که به لباس میخوره جواب دادم. دون ال اول لیس الا تقریباً لجواب انتفاع بال میته. این یک نوع فرق یه یعنی امام به آق صریح میفرمین که اشکال نداره. عملت انجام بده فقط لباس تا عوض کن لیسه الا تقریرن جواز الانتفاق بالمیته و الا فکان سقوط و ان معکونهی فی مقام بیان مخلن بالمخصود چون امام در مقام بیان عملم هست که این عمل درست یا نه امام چه من نفهمیده ملاب مرحب مستاد چون داره کتب که اعمال و اغماد سیوف من جلود الهمر المیته فیوسیب و ثیابی فا اسلیفی ها ظاهرا خود سوال از صلات تارت نجاست یا مانع رسالت ظاهرا و اما انی اعمل و اقماد سیوف خود و او مفروقان عن گرفته جایزه تکاذرو خب خود همون بله اون مفروقان عن گرفته این نه میخوام بگم جزء سوال نیست اون وقتم مشکل بله مشکل اینه که چون بعدش داره که به خاطر جواب نوشتن و حضر زیاد دارمشن فه این ما تعمل وحشی هن رکی هن حالا این دوباری که خب این فه این ما تعمل وحشی یعنی سوال از خود عمله الان یه اینشون هم فکان سقوط و انمرکونی فی مقامل دهند مقلن بالمخصود و من هنها یعلم الوحشی قول عبی جعفرستانی هنسان فه این کان ما تعمل وحشی هن رکی است، اذا تراود من جعلها من جمله ما يدل على جواز انتفاء بها دود العث في یکی از روایتی که ما از شخصی به نام سیخ در مقابل این روایت رو خب اصحاب ذکرن برای منع انتفاء بینی که بعض در مقابل به امام استاد و امام طائف دوستانیه فای ایضا كثيرات مستفیه که انتفا نشه منها این طور شاک شده روایت سیغن و الرشا روایت ها و من ها روایت ابو القاسم و مولدی ظاهرا ولدیحی بود باشه نولدی عبارت این طور بده و قد ظهر رجول استدلال بها من روایت سیغن المتقدمه خیلی عجیبه خب اینو باید با اون خیلی فهم میکنه حالا ایشون وشیش از همون در میان. الا ان اصرار السائل في هذا الرويه علم جواب بقولي و نحن محتاجون الى جواب كه في هذا المساله ياسين ضرر رتنا اليها ادل دليلن على جواز الانتفاع بالميت ش ميگه ما مستریمين بهترین دلیل برای اونه ف ان سكوت و عن حكم المساله مع اصرار السائل على الجواب تغرير على ذلك بلا ارتياح حالا شون باز ایشون مفتن رواستو بردن من مفتن را میارم قاله حالتی در رواست داره ان محمد ابن ایسا ایشون سمن را هم در اینجا نایه بردن اما قبلش محمد ابن ایساست قبلشان هم روایت را رو مرمون شیخ منفردن در کتاب تهذیب را به اصنادیه یعنی ان سفار ان محمد ابن ایسا ابن عبید قال آن هب بخشی، آن محمدین ایسابن ابیت، آن قبل قاسن الصیقل و بول بهی، قال کتابو الراجول. این آن موارد، این تولید اینه. قال کتابو الراجول. البته در ملاحظه اخبار و ادیم نگر کنند که این مرات احتمالا هست محلی شو تعبیر به نهایی باشند یا دشمن تعبیره در راجول میکنه. و احتمالا هم احتمال به ما من اسکری تامنانه اینشالله من بعد چون مفصلتر صحبت میکنم این با احتمالات کار درست نمیشه اینشالله از خواهم کرد که این روایات که با این سند هستن اینشان توضیحات این وقت خواهم گفت به حضرت حادی نمشه شده کتبو الارجل مراد حضرت هادی. پس در اولش داره قال کتبو الارجل بله. جعلا نالله فداق. این ناقومن این معلوم میشه که این آیه اول قسم اضافه بر اینکه خودش کار شمسی رو، شون شمسی رو اینها بوده، ای از هر زندانش رو، هامیگاش رو، از نواهاش رو، از قوم هم باش تا همین کار بودن، گروهی بودن، از طلا هم بوده. این سیوف شمشیر گرست میکنیم ولی صد لنا معیشتون معیشتون معیشتون معنی زندگی راه زندگی ولا تجارتون غیرها زندگی ما معیشت ما تجارت ما از شمشیر و نحنو مزترون راه دیگر بلند نیستیم زندگی از همین راه شمشیر برده خب تا اینجاش جاش که به شمشیر بعد میگه به این نما علاج من جلود المیت علاج یعنی چارسازی کارپردازی ما کار کرده ما بدون جلود میته از بغال و همیر احلیه نیست از کلی ممکن بوده که جلود المیت دو جور باشه المیت ای که اصلا حالت تسکیه برایش پرز نمیشه مثلا جلود سر یا خوب مثلا دو جلودی که برش پرز تسکیه هم میشده این فرزی که در اینجا آمده بقال و همیر از پر یا قاطر بقال و همیرم که اولاق باشه این ظاهرش این که میته مز... قابل تسکیه است لایجوز و فی اعمال و ناغیرها این لایجوز ظاهرا در اینجا لایجوز تکلیفی که نیست و از هم نماشه لایجوز معنیم لایجوز ارتی تکمینی به اصطلاح لایجوز نه ناظر به تکلیف نه ناظر باکن وضعی یعنی لا یمکن این لایجوز اقلن لا, يجوز لا يجوز و فی اعمالنا غیرها ما در کارهای خودمون غیر از این دیگه راهی نداریم لا يجوز و فی اعمالنا غیرها فیهلو لنا عملها آیا عملش برای ما جایزه و شراؤها بیعها و مسها ها به ایدین ها و فیابنا و نحن سلیفیتی آبنا و نحن محتاجی لاجعا به که یه ها دهیل مسئله یاسیی دهنا به ضرورتنا علیه ها من موستاتانه که این روایت مثل روایت سابق اما نه معنی تو که این روایت که خودی با روایت سابق خیلی فهم بکنه ایشان به اولا در این روایت دیگه و نحن مسترون چاره نداریم راه دیگه نداریم منشه اقتصادی منبع اقتصادی غیر از این نداریم و هر زمینه که میت است اینا به جای خودش بعد این, این روایت متن با او یک نقطه ای داره که در خود سؤال سه تا مطلب رو سؤال کرد دقیق بکنیم لنا عملها ظاهرا مرادش خود این کار پیل جایزه یعنی انتفاع به ظاهرش دیگه عملها زمین برمید سیوف لیکن به لحاظ اینکه قلاف سیوفو از میته میساختند. فیا حل لنا عملها. سوال اول ایشان انتفاع. ها. و شراءها و بیعها این سوال دومه فیا पुरुش هم جایزیانہ. و سوال سوم و مسها به ایبینا و سیابنانا مصدق اسلامنا. پس این روایت مثل اون روایت نیست که از تو استاد به اجمال برخورد فرمودن؟ معرفت که این روایت خیلی دقیق تر و تریشتر از اون روایته دقیقا ایشان سه تا سوال از امام حضرت حادی علیه السلام انجام داده یکی انتفا یکی خرد و فروش یکی مسئله تهارت و نجاسه هست البته فرض ایشان هست یک نوع ازترار البته ازترار عرفی نه ازترار عقلی ازترار عرفی یعنی من بالاخر با زندگی بکنم به زندگی نمیشه الان در شرایط ما چی هست که اگر بخوایم از این میک استفاده نافه میمشونم تا این که خب تغییر شوق بودیم تغییر حرفه بدیم اصلا این معلوم میشه که ببینیم ما راهی غیر از این نداریم شبا در یک منافقی است که غیر استفاده شمچیر دیگه سرد و نافهی براشو نمشه این جواب حضرت با اون یکی یکیه اجل فرمودن که یک لباسی رو برای نماز قرار بدیم معناش اینه که بله این عمل درست هست خریده فروش هم اشکال نداره لاک نجسه حالا اگر نجاست نیست لا اقل مانعی یا صلات دی والاگه که نجسه نباشه مانع نماز هم باشه مثل مثلا موی گربه نجاست نداره اما مانعی از داره به هر حال امام فرمود اجعلوا ثوبن سالات. بعد از راه تقریر استفاده میکنن که امام اجازه دادن این کار، دقیق میفرمایید، این کار مشکل نبوده. این راج به این قسمت بعد مرحوم استاد مقام جمع بین چون ما همه روایت نخوندیم مقام جمع بعد از حدود چند صفحه صفحه هفتاد مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه از روایت تعلیق القاسم سیقل دو تا جواب داده مرحوم استاد این دو جواب ایشون رو بعد از حدود چند صفحه شد روایت ابن قاسم سیقل صفحه 65 در صفحه هفتاد ایشون جواب به عنوان نقدان و آن قد اشکال مصنف، علی الروایه به وجهین یعنی مرحوم شیخ انصاری قدس الله همه است اصولا کلمه من کلان عرض کردم اگر بخواهید به صدق قطع کنید باید به سیغه معلوم داره من خونده بشه. سیره مجهول نداره مثلا وقت اشکله مثلا علال فلان اشکله درست نیست خود اشکال باب افعال هست لیکن از اون باب افعال هاییست که لازم متعددی نیست ازا مجبور نمیده اگر اشکال مورد اون استشکال و قد استشکده اینجا هم همینطور قد اشکال المسلم على روایه این دقیق نیست صحیحه چیه که اش امرو. اشکال امرو. این که اشکال الامرو اشکال امره، نه اینکه اشکل اشکال علی امره، متعددی ندر اصلا اشکال متعددی نیست یکی اشکله متعذری نیست که مشابه اون که اوله باشه. بذا میگیم امرون معقل. امرون مشکل، یعنی مشکل، مشکل. قد اشکل مصنف علی الروای بزجه ای ای این عبارت درسته اشکل المصنف. یعنی جعله و مشکله. اشکاله بین این ما. این هم یک نوکسیا ادبی حالا چون گاهی عبارات خوندی میشه قاعده اشکله علی ذلک این اشکله غلطه. قد اشکل, اشکل علی عد اشکال ذالب ولی اینطوری نوشته بشه مشکل شد ایشون جواب مرحوم شیخ از این روایت قاسم سهقل جواب دادن حالا غیر از مسئله سنت های استادم اشکار اول ان الجواب لا ظهور فیه فی الجواز الا من حيث تقریر الغير ظاهر فی رضا خصوصا فی مکاتبات المحتمله التقیه مرحوم شیخ احتمال تقیه دادن در روایت که این عملش و خرید فروشش به خاطر لافیه استاد اشکال فر اولا انک تقیه فی مکاتبات این کارهات كثيره الکونه ها معراضا لها من جهات چون نامه می مونده میتونن بیشتر مشکل درست بخونن لذا تقیه ائمه بیشتر میکردن لکن ها فی خصوص هذه الروایه غیر محتملت لو ورودها غیر جهت التقیه چون ل ذهاب اهل سنت به اجمعه الى بطلان بی المیتته که ما عرفت بی را حرام میدونن از که دیم روایت بی المیته ان الله رسول و حرم و المیته حتی در بخاری هم وجود داره و عجب و ذالک اصلاح تمام ده عجیبتر اینه که تشکیک و فی کاشفیه تقلیح رزا و فی کونی همیناله حجج شرعیه مع نهو که سایر امارات، مشمول و لحلت حجیه خب تشکی که عملا مح میشهخواگه همه بر تقیه بشه این درست ل خصوص که مکاتبه است که احتمال تقیه توش بیشتره خدا درست مشول خاص و لسانیت این اشکال اوله آی خوبی به میشان. این فعلی تقیه ماهی به فعلیت موضوع آها و اما مجردل احتمال ف غیر وقابل لعنی موضوع الله و سببا لرفعالیت انه در دلت شرعی نه هم الاسار هم فعلیه هم وجه برفعالیت اما خالف ها مکاتبتن کنه از غیرها درسته وجه برفعالیت مکاتب و غیر مکاتبش در اینجا فهم نمی کنه. اما در مکاتب احتمال تغییر بیشتر خواهد بود این من چون یواشه هاش مخواهیم وارد برس بشیم این جواب مرحومه های خوبی به نظر ما و اده دیگه هم گفتن جواب. اینا این جواب ظاهرن به نظر ما درست و نظر نمیاد اولا بگیم اینا نظرشون در جواب چیه نظرشون مثل مرحوم خوبی در جواب این است که این روایات داره از جلود توش قید دباقی که نداره پس میونه مراد جلودی میشه که قبل از دباغی. پوست قبل از دباقی پوست قبل از دباقی مشهور تبیرشون جمهور اهل سنت باطل میگنه. هم انتقار رو باطل جایز نمیدونن هم بیش رو باطل میدونن پس این چه تقییه ای و وقتی خود اونها هم فتواشون همینه امام طبق همون به اصطلاح فتوای اون بگن من درسته که تقییه نشد به عکس فتوای نشد این اشکال و استاد واجبه این قسمت که حمل بر تقییه در اینجا بسیار مستبر از خونم که در قدر درسته این مطلب ایشان که در جلد غیر دباغی به تعبیل ایشان مدومهوریشون قائل هستن که نجسه و خیلی فروششان درست این درست مثلا اما در همون جا هم قائل داریم به سهر مثل زهری و حتی احتمالا خود بقاری و اونها از شد این ادهی در همون جا هم قائل داریم که انتفاع به جلد میته مطلقا جایز طلا در باغه نشد و نشد. مطلقاً فارسی بحثش گذشته تکرار نمی‌کنه. با اینکه غیر از این نکته من فکر می کنم حق با مرحوم شیخ قدس الله اعظمه و قدس الله سره و سر شریف و انصافاً با این که مرحوم شیخ اصولاً هم های زیاد در اختیارش نبوده و هم خیلی با فقه اهل سنت، با حدیث اهل سنت، با مبانی اهل سنت خیلی به نظر نمی‌رسه که ایشان آشنا باشه. اما رو همون ذوق فطری، چون واقعا تعمالاتی که در احوال شیخ کردن شیخه غیر از حالا جهاز زهد و تقویب و اون صفای نفس و اون خودصوات روحی و معنوی که واقعا در در جیباره بود شخصا بسیار مرد خوشفکریه منون شیخه اینه در از واد اعتراف کرد فقط این بیست آدم زاهد و عابضی بوده بسیار آدم خوشفکریه اعدادش قابلیت درکیشان خیلی قریه چرا در این روایت مرحوم شیخ البته ما نمی‌دونیم شیخ چجوری حمله برتری کرده این نقطه بنظر خود شیخ چیه آیا مجرد اختلاف را کافی می‌دونن سیارن لكن انصافا همین مطلبش درست این علی که شیخ خرم بود درست و این اشکالی که ادعی کردن به رضای خوئی بازگام کردن که اصلا معنای دستور تقی اینم توجه نشده ببینید اونی که در اون زمان بوده از جلود و پوست علاغ و غیر علاغ و به حال که قاطر و اثر باشه غلاف شمشیر درست میکردن خب به صورت طبیعی این غلاف ها از گوشت اینهایست که است که دباقی شده قبل از دباقی که قبل از غلاف نیست که کدوم پوستی لادن میتونه قبل از دباقی به صورت غلاف شمشیر در بیاره این که میگه میخوام غلاف شمشیر بکنم اغمات بکنم شیخ هم شاید نظرم من نظر شیخ از طریق از کجا بوده اما انصافا این استظهار شیخ بسیار لطیف و به خیلی استظهار صحیح چون ارز کردم دیروز عرض کردم درست اینها روایت راجع به جند میتشون اختلافی بود اما عملا در جهان اسلام جند میتشون در خیلی از کار راه پیدا کرد خب شما الان میدین در اصل قاعده انقلابشون بازار اسلامه یک مشکل همیشه سوال آقایان از این چرمندای چرمیه که از خارج میوردن که با این چرمندان نماز بخونیم نخونیم مثلا نجس هست نجس نیست یکی هم کفش ایده اینه که مثلا کفش‌ها رو بپوشیم بخریم بپوشیم ما توش نماز نخونیم یعنی مثلا اگه عرف کردیم بعد بشورین نجسه این مسائلی بوده که محل ابطلا بوده در اون زمانی که از موارد ابطلا نسبت به پوست میته در حقیقت راجبه دنیای شمشیر یکیش دسته خود شمشیر بوده که میاد ایناءالله حالا تو خودم رازیر هم که قوائم سیوف رو ما از همین میسازیم اووام اون دسته شمشیر بوده برای اینکه در دست بمانه و در این حالم فلزی نباشه اذیت بکنه از یک نوع پوست انتخاب میکرده خب ما الان که من نمیدونم چون نیدم اونا رو نمیدونم پوستش چی اما عادتا اینطوری که بود پوست مقاومی باشه پوست سفتی باشه یا کارگدم بوده چی بوده من نمیدونم فیل بوده پوست چه حیبانی بوده سوا بوده یا سوا نبوده عادتا اولا قطعاً چه این پوست های با دباغه شده باشه قطعاً همینطوره مثلا الان اگر دقت بکنید از خارج اگه وسیله مثلا ماشین بیارن جایی دسته فرمونش هم مثلا با چرنه اینا خب قطعا این چر باید دباقی بشه چر باید دباقی بشه دستوی قرمون نمیزونه که دقیقی پرمونید شواهد قطعی نشون میده که اگر وسائلی رو استعمال میکردن تماما دباقی بودن و ارز کردیم مشهور بین اهل سنت با دباقی پوست قابل استفاده میشه و پاک میشه هم انتفاعش جایز هم خیلی بروشه این مشهور بین احل و لذا، از این که این ابوالقاسم میگه ما داریم این کارو میکنیم واه نداریم این نشون میده که میخواد بگه تو جامعه جا افتاده راست هم از تو جامعه جا افتاده بود جامعه اون زمان جامعه اسلام اون زمان بین سنی ها کاملا جا افتاده بود یکی عبارت از دسته شمشیر بود یکی هم عبارت از غلاف شمشیر بود خب طبیعتا آقایان ما این آنی که اشکال به شیخ کردن اونا اینا نظرشون به اینه که خب جلد کشیده شده که دباغي شده. راست این جلد قبل از دباغي بوده. اگه قبل از دباغي بوده سنی ها در جلد قبل از دباغي اون رو نجس می‌دونن و درست نمیدونن روشن شد جواب. جواب اینه که، سنن در فقط دنبال لفظ نگاه کرد کلمه جلد توش بوده تصور نکردن خب جلد غیر دباغي که خلاف نمیشه یعنی به که ای قربان بود، حتماً یعنی فقط گوشت یک طوس حیوانیه که سر می‌بره. پوستش که بیکنن این پوستا به در دسته شمشیر میخوره با اون واژه نه به در درجه خلاف میخوره وقتی میگه از جلوده همار میته یعنی واژه مرادش چیه مرادش اینه که دباغي شدن کلمه دباغي تو روایت نیامده اما قطعا مراد اینه مثل اینکه به شما میگن آقا من کمر از خارج کلم از پوسته مراد قطعا پوست دباغی است که از پوست غیر دباغي کسی قرو نمی میده یا کرش خیلی از خارج اون ظاهرش پوسته چیکار بکنیم قطعا ما مراد پوست دباغی یک ماشین از خارج خریدیم دسته فرمونش از پوسته من رندگی میگم عرق میکنه آیا داخلش میشه و نه قطعاً مراد دباغی است دسته پوست غیر دباغی رو که دسته فرمون ماشین نمیشه درست بشه این روایت مبارک ولی توش کلمه دباغی نیامده راستش خلافه درست لكن قطعاً مراد دباغی ولذا مرحوم شیخ هم حرفش چیه که این هم همه زدتقیه میشه راست هم میخوب قطعا این امر جاری و ساری بوده با اینکه از عمر نقل کردن خودشون که با در باقی هم پاک نمیشه و هنوز میتست و خیلید و فروش نمیشه بلا اشکال هاشون و روازشون خلاف فتوه عمر تو این مسئله خلاف عمره این مسئله قطعا اینها به دنبال فتوه عمر نبودن و روایتش رو خوندیم، رد کردیم، حتی ادهیشون مثل بخاری که اصلا معتقد با دب با دباقی دب با دب نکردم پاک میشه. اصلا پوس به عنوانه خارجه. این بحثی هست که ما الان مطرح کردیم، پوس به عنوانه از ادله میته خارجه. ربطی به مت نداره دقت فرمایید. پس این اشکال اول مرحوم آل خویی انصافاً وارد نیست و نمیشه قبول. اشکال دوم مرحوم آقای خویی مرحوم شیخ فرمودن موارد سوال در این دوارد عمل و سیوف و بی آها و شراع آها لا خصوص و غلاف مستقلن نه اینکه غلاف غلافش هم شید ولا فی غن سیف علا انه جز امن از سمن در مقابل این پوز فقایت ماید الله علیه جواز انتفاع به جنب میته به جعلی غم در سیف و ولا یو نافی عدم جواز محافظتی بله در میاد انتفاع اما معاوضه نمیشده این اشکالشه چون این آقا سیغل بوده سیغل کارش همون شمشیده جلا دادن و تیز کردن شمشید هم با قلاف میفروخته قلاف نه مستقلن مبیر بوده نه در زن شمشید میزاده شمشید توش قلافم بوده در اینجا قید و فروش خود قلاف به تنهایی جایز نیست این دوبار موردش تنهایی نیست این هم وجه دومی که شیخ بله درباره جواب از این روایت فرمونه بعد مربوم استاد ثمرتی اعناق داد من القرايد نشان خیلی هر فشیخ انسان عجیب فی این منشئ ذلک حسبان ان الله ماير في قول الصائِد فيهل لنا عملها شرائهها بي آها مسهاها بيدينا خیال کرده مربوم شیخ این زمیر به سیوف در میگرديم بلکه نهو فاسدون در نهو لا وجه لعنیشتر سیاف سیوفن من غیرهی این لا وجه و معلوم سیاف باید سیوف بقیر بزروشه تجارت دیگه کما لا وجه ان انمتصه ها و اصرارهی به جواب ان کل ما ساله بلها به غمائر ترجه الى جلود الهمر والبغاد میتتن کاند او غیر میته سما یاد ذلك رزالک لمن یاد راسته این اشکال مرموم استاد درسته این سوال درست انی عمل و سیوف لکن سوال این نکته سوال اینه بله نکته اساسی سوال این است که من با این جلو میته این کار می کنم چرا اشکال نداره بله بعدم هم کماندر بله من من المستبعد جدا بل من المستحیل عادتاً ان یجد جلود در میتمن همین به مقدار یکون و هم به شغل هم بلا شراعه ها من الغیر دیگه اینجور تقریبات و این اشکالات ریز فیزه ها رو نمیشه قبول کرد چون مستحیله هست پوست رو میخره در باقی برخود اصطورش قلاف درست میکنه بله اند داله که حرمت و بی القلاف مستقلا مقتضاش این من فاس اضروبه ما تکون و قیمت القلاف اکثر من از فکف یهکم به طبعی دائما بله و از به این طور که همیشه قلاف تابع سیفه نه گاییم قلاف شاید خیلی وقتا است نه گایی. یا متعارف قلاف جدا از سیفه حساب میشه نه هم مثل جل و مسامیر برای فرس و جدران این واضح است باز در مرتبه مسئله روایت رو بما ترمد روایت رو به ذهاب زهاب الامه لا جواز جلد بی جلود المیت بعد از درق این تو رفیه اولا انه امره و به انیج علو سوبن لسلاته علی خلاف تغییر نه این خلاف نیست چون امام می توانستن بفهمنید که درسته بعد از دباقی پاک همطور که سنیا گفتن هم عملش انجامه هم پاکه هم میشه خیل و فروشی اما نمازشون تقربه الالله میتو توش نباشه این تقیی یعنی به عبارت اخرى سه تا سوال داشته یکی انتفای یکی خیل و فروشی مثلا نماز ما از سرینی که از مفایم تقییم هست که امام یک جوری جواب بده که راه فرار داشته باشه بس. انا لنقولول کلمه ولنا منها سبعون مخرجا این درمین ممکنه ایمان میتونم بله حالا که مردم جانهر اسلامی دارن میگن با دباقی پاک میشه تو هم این بکن خیل و فروش بکن لکن نه بکن با تقریر تقریر که بله شما برای نمازت اتخ و صحب و صلاح برای نمازتون لباس دیگه ای بگیرید این یعنی امام میتونه بگه من مخاطم بگم اونام انتفاعش جایز نیست خیل و فروشم نیست. لیکن چون شعون و شرایط تخبود اونا رو اسم نبردم این اینکی اسم بردم و ثانی هم لوکانتر رو علیق لتقیه لکانالالیق به حرمت البعی و شرائط یدفع محضور و تقیه اندل افتلاع بها به ارادت به حرمت بعی آها قبلت درقه فه این نفیه بیان حکم واقعی معمولا حضرت تقیه نه البته تقیه چون یک راجع هست به مقامه به اصلاح حفظ طائفه یه نوع تعبیری طوریه مانند که امه علیه مسلم به کار برند که اگر خوب انسان دقت بکنه می‌بینه امام جواب نداده ابتداعا خیال بکنه جواب داده و سالسن ام نروای خالیتون ام کون البه و شرا بعد دبر لطحمل علیه ها و مجرد و عدم صلاحیت الجلد و جلاف قبل لا یوجب و تقییده ها لیمکان دبقه ها اند جعل ها قمدن. از اون جواب ها میشون اشکال هم جواب داده که ممکن است اصلا دباقی نبوده وقتی که مخواد قلاف بشه دباقیش بکنه ازن تا روایت و ایغان علا خلاف طبیعه نفهمیدیم رویشون چیست و اما توح و اخبار المانعه تشتمل علاقه این را به مطالبی که مرحوم استاد داشتن و انصافا تا اینجا حالا باید ایشون اشکالشون یکی سنده که سند رو ضعیفه بازم تکرار می‌کنه ما بعد یکی هم اشکالشون سر مسئله این که حمل بر که مرحوم شیخ فرمودن درست نیست و لزوما ایشان بیع رو و انتفاع رو میگن از روایت در میاد که جایزه و ایشون معتقدن این روایت بهترین سن روایت در جواز بیع می اما ضعیف السند لولا ضعف سند حتی جواز بیع هم از این روایت در میاد بلکه عرض کردم انصافا مورد روایت در جلود میته است بعد از نه قبل از دفن ذل کلامت تا قدم ان شاء الله اللہ علیه بعد این شکی حتا قول مشهور که قبل از اگر اگر امام مدیریت و جویزه